رخداد، نادرستی نظری های نژادی، هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی، به نام خدا، بارز سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید، به خصوص همراهان برنامه رخدات قسمت نهم رو در خدمت شما هستیم. به همراه جناب آقای ایران مهر گرامی، آیشو. بنده اول ا... اثرات منفی که داروینیست هستش این رو شروع می‌کنم بعد شما در واقع در ادامه خدمتتون هستم. چند تا نظریه هست بعد منم اونم بله. خدمتتون خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. خواهش اولین اثر منفی که ما بینیم از نظریه داروین، چون نظریه داروینیسم متعلق به قرن 19 هم هستش، تا موقعی که به عنوان یک نظریه علمی مطرح بود، خیلی خطر چندانی نداشت. ولی وقتی که وارد فلسفه میشه، ایدئولوژی میشه برای یک نظریه خاصی، اینجا دیگه خطرناک میشه. که یکی از بزرگتر میشه گفت فاجعه تاریخ بشریت، تاریخ بشریت فاجعه خیلی زیاد داشته. ولی ای که یک نفر، یک انسان فاجعه بیاورنه برای بشر، هم هستش و در آلمان نازی هستش که چنین فاجعه‌ای به وجود میاد شاید مثلا شما چنگیز خان رو مثال بزنید بله چنگیز خان بود بوده ولی بله در اون دوره در نظام دانایی، در نظام معرفتی اون دوره شاید این فاجعه مطرح نبوده اون موقع اصلا رسم بوده اصلا حتی هر طایفه هر ایلی هر قومی که شمشیر دست به میکرد و چند هزار دو اده پیدا می کرد میرفت قارت می کرد و حکومت رو به دست می کرد. همونطور که در ایران هم حدود هزار سال اصلا ریشه های حکومت از قبایل بودن از اشایر بودن. از کوم حضور هزار بزنگ. سال بعد حمله عرب بله, بله. دیگه بله حدود بله. سال. سالی که حکومت مرکزی نداشتیم. بله دقیقا در همون موقع هم آیه دکتر حالا بخوایم بگیم اون تا چپ به غرب‌تر بریم با توهوش بیشتر بشه دیگه. بله دیگه. اما هزاران سال مثلا ایرانیان فرمانروای جهان بودن ارتش هم داشتن شمشیر هم داشتن از, دقیقا. از این قرار نکرده. بله دقیقا. این بله عب... <تص> <تص> <تص> این خصوصاً ما در مورد چیز رسیدیم به، خواهیم رسید قطعا به جهان گستری و ادالت گستری کوروش هم خواهیم پرداخت و بل. بقیه پاسم و حتی قبل از کروش بل. حالا کار زیاد داریم و با زیاد بازی خواهیم خب کنم احساب و بعضی ها از کنم حضورتون که من ارزی بکنم باید دکتر شما بخواییم باید بحث بشه ما نمیداریم نه بفهم من اصولا کاری ندارم چی رو کی گفته بله خیلی هم غربی شرقی تو این زمینه برام مهم نیست بله. بیتران راسل میگه که شما ممکنه یک دروغ بگین ده نفر براتون دست بزنن درسته ممکنه یک راست بگین هشت نفر به شما ناسزا بگن اما دو نفر به فکر فرو برن حتی بل. نه اینکه به این مهمه این مهمه بله بله ما خیلی واهمه ای نداریم اگه حالا با قول محروف ببخشید بی نزاکتی هم بخشت. بخشت. ببینید. اینجا خب میدونیم که اساس نظریه که داروین مطرح میکنه که قبلا مطرح شده بود و در واقع داروین نارو مطرح کرد از دیدگاه علوم زیستی من قبل از که وارد این مسئله فلسفی حزب نازی بشم که از اون گرفته شده بود دو رشد وجود داره رشد نمو در از دیدگاه زیست شناسان بله. یکی آنتوژنی هست که از تشکیل سلول تخم تا مرگ رو در, بله بله. در بر میگیره یا رشد و نمو و فردیست این بیشتر درست یکم فیلوژنی هست که در اون منشه پیدایش گونه ها تکامل گونه و چگونگی اشتقاق اونها از هم مورد بررسی قرامی که در واقع میشه گفت که فیلوژنی تکرار آنتوژنی هستش یعنی اونجا خود به خودی هست ولی اینجا یه ارادهی هم از طرف دوتا جنس وجود داره که در واقع این رو تکرار میکنن و به رشد و, و اون موجود میانجامن میشه کم بیشتر مقایسه مارد. کنین متوجه بشه ببنی... ببنی... ماه خاننده خواهش میکنم شنونده ها ببینیم مثلا ما تو موجوداتیم مثل حشرات موجودات دیگری برد. مثلا یه سری موجود... مثلا ماهی سفید شما میدونید که برد. در هر تقوم گذاری چیز رو میذاره درست و یه نظریه هست نظریه کاملا درست لحاظ ریاضی اگر همین تخم ها زنده بمونن برد. و تبدیل به دریا میشد تبدیل به ماهی بشن در عرض ده سال کل پهنه اقیانوس‌ها ماهی سفید در واقع فرامی میگیره ولی از این 50000 تا پنج تا بیشتر سالم نمیمونن و اینها هم فردی هن. یعنی اون ماهی که ماهی سفیدی که میاد تخم گذاری میکنه در واقع اراده ای نداره اینا اکثرا خورده میشه توسط موجودات دیگر دریایی اون 5 تا باقی میمونن به صورت خود به خودی به صورت غیر ارادی باید. از تخمیان بیرون ماهی میشه شاید از اون 5 6 تا شاید 3 4 تاشون مثلا تو همون دوری بچگی خودمشم یه دونهش شاید بمونه باید. یا در واقع به صورت چی هستش غیر ارادی هستش و اون نسل قبل به نسل بعد خودش اراده ای نداره یا حتی ما تو میدونیم که تو موجودات به غیر از ما اراده فقط انسان اینجا اراده ما به صورت نسبی و تسامحی اراده رو به کار میبریم چون اراده فقط مال انسانه البته در... که بقای انتخاب طبیعی خود, خود, انتخاب. خود برد، برد. تصادفی, تصادفی ولی یه سری موجوداتی هستن که نه یه سری نظارت هایی از طرف اون در واقع اونایی که اینا رو به وجود آوردن چه نر چه ماده به وجود میارن مثلا گوسفندی که مثلا یه فرزندی رو به دنیا میاره یک در واقع برهی رو به دنیا میاره یا یعنی مثلا حتی گربه ای که مثلا بچه گربهی رو به دنیا میاره فرزندانشون نگهداری, نگهداری می... میکنن در در در و مذهب بنده در, در واقع این بوده لذا اینجا نظره داریم اینجا شکل میگیره که درسته که اون انتخاب طبیعی توی اون موجودات اولیه بوده ولی یواش یواش چه سری موجوداتی هم به وجود میان با. که بر نسل بعد از خودشون هم تاثیر میذاره افراد بعد از خودشون هم در واقع تربیت میکنن یک کمی از اون انتخاب طبیعی فاصله میگیرن حالا بیایم روی اثرات منفی حالا بازم تو نمونه چون بمونی بازم زیاد کش پیدا میکنه اولین اثر منفی که ما میبینیم و توی بشریت هم تاثیر میذاره تو اوایل قرن 20 هستش فلسفه‌ای که حزب نازی حزب سوسیال ناسیونال آلمان در واقع از اون میگیره او تحت تأثیر تکامل اصل قدرت رو در واقع تئوریزه میکنه در تنازع بقای بیوقف آنچه به کار میآید اخلاق دینی نیست بلکه قدرت طلبی است اگر خوب آن است که باقی بماند این اینو در واقع نیچه میگه تئوریزه میکنه آنچه باقی میماند قدرتمندترین بر و برترین فضیلت است بنابراین این خوب با قدرت مساوی است یعنی هر چه فضیلت است با قدرت در واقع ببینیم میاد تنازع بقایی که اون حیوانات دیگه مثلا موجودات دیگه داشتن حالا بر اساس یه سر قریز است ولی اینجا میگه چی اینجا اون قریز قدرته در کتاب اراده به قدرتش میگه دیگه قدرته که در واقع تناقض هر کسی که قدرت بیشتری داره اینجا فقط مخصوص قدرت سیاسی نیست جالب که نیچه میاد همون تعریفی که پست جدید تو این 30 40 سال اخیر از قدرت دارند رو اون موقع از از اون موقع از نیچه میگه اثر اشاره نمیکنه ولی مثلا اون نگاهی که مثلا فوکو الان به قدرت به قدرت داشت لیوتار به قدرت داره یا بودریاد به قدرت داره که قدرت در همه جا حضور داره قدرت توی خیابون‌ها حضور داره. قدرت در داخل رختخواب شما هم حضور داره قدرت همه جا حضور داره و همینم هم وقتی تئوریز نمی کنه فکو انقلاب ایران رو میگه که در سال 1978 قدرت بر روی کف خیابونهای ایران ریخته شده هر کسی این قدرت رو جمع بکنه میتونه دولت تشکیل بده اینجا از قدرت اینه و قدرت قدرت سیاسی نیست چون نگاه ما ایرانی هم منظورت از قدرت اینه که قدرت فقط کسیه که پست سیاسی در اختیارش هست نه قدرت لزومن این نیست جالب آقای د فردوسی تو شاهنامه افتادم بله. حالا این چقدر اینجا مستاخ پیدا کنم؟ اما شبیه فرمایشی بود که شما اینو داشتین میفرمودین فردوسی یه جایی میرسه میگه که فریدون فرخ فرشته نبود بله ز مشک و ز انبر سرشته نبود, نبود. ز دادو دهش یافت آن نیکوی بله تو دادو دهش کن فریدون توی دقیقا یعنی بله. ما تو فرهنگمون خیلی هم قائمه به فرد نبودیم. نبودیم اما حالا نمیدونم چی شد شدیم دیگه حالا شدیم. شد. شد. قائم به فرد شدیم دقیقاً هم سیستم ایران قائم به نبود ما تو هم توی متونی که باقی مونده از حالا اینجا فرمودین ما مجبوریم یک دو دقیقه بازم بریم برای حاشیه متونی که باقی مونده جالب اصلا قائم به نیست مثلا البته دل... هر جو مرز طلب نیسته. دنبال آنارشیست دقیقا نیست. دقیقا دقیقا. نیست مثلا نامه تن... تنسل رو بخونید بلده بلده. فریدون هم... شاه میشه بله اما میگه که دیگه از فریدون خدا نسازین اما بلده. ازش فرمان ببرین فرمان ببرید. بلده. بلده. پس تنسل رو ببخشید من پریدم تو اصلتون مثلا تو میگم داخل نامه تنسر که مال وزر جمهور مال وزیر انوشیروان جوری فلسفه قدرت دوره ساسانی است اونجا هم حتی میبینید چیزی از اقتدار نمیبینید شما مثلا اولین متن فلسفی که قرب تولید کرد شهریار ماکیاولی دیگه اصلا بلد. سراسر سلطه است قدرته ولی اونجا مثلا ماوسوس آگست... اگستوس بله, آگستوس بله. ولی ولی اینجا نمیبینید شما چه چی این چیزی رو حالا جلوس. اینم به موقع ان وقت میدوند. برسه توی برنامه‌های دیگه بحث می‌کنیم در پس اصل تکامل فلسفه فلسفه برای نجات پرستی هیتلر و قدرت پرستان در واقع می سازه که میلیون ها نفر رو توی جنگ جهانی دوم به نابودی می که تو کشور آلمان نازی اصلا از این این کارا زیاد میکردن. مثلا می اومدن یک سری زنهایی که اصالتا مثلا آریای حال این آریایی بودن از کجا تشخیص میدادن حالا بماند تعیین میکردن و یدی مردهایی که در واقع عضو ارتش نازی در می اوومدن هیملر بود دقیقا, دقیقا. واسه اینها حق داشتن در واقع با همدیگه آمیزش داشته باشن دقیقا. و اونهایی هم که در واقع می اومدن از حاصل در واقع این آمیزش فرزندان این می فرزندانه که اینها میومدن از بچگی تحت آموزش های سخت آموزش برای. های ایدولوژیک فلسفی سخت قرار می گرفتن و اینجا ما می بینیم که دقیقا همون نگاه در واقع داروینیستی رو داره بله نژاد برتر, با... نج... برتر رو برترو فقط بیارن بیرون فکر مونن که بقیه نژادها بقیه کسایی که مثلا روی دو تا ازدواج مثلا عاشقانه با... با هر مثلا جنسهای دیگه شکل میگیره این ممکنه مثلا اون نژاد خالص آریایی رو از بین ببره و تمدنش رو از بین چقدر از نظر علمی غلط بوده های دکتر هرچی به سمت همگونی به رژیم ها ضعیف میشه طالب دقیقاً هست از واز شناختی هم برد. اثبات رسیده و جالب هم هست که یکی از خواندام های ایرانی اتفاقا من اسمش رو نمیبرم اینجا من چون آشنایی دارم باهاشون ازدواج در خانواده حالا شما اگه شما, آره، آره شما،, شما میدونی اسم نبرین آره نه، بعد اینها اونقدر اصرار داشتن تو ازدواج های خانوادگی حالا اولا ما مثلا توش خانم داریم هفتاد سالشه که پیر دختره ازدواج نکرده بلست. مثلا تو شیزه خانم مثلا 70 80 سال مثلا داریم توی اون خانواده بعد اونقدرم هم با حماقت مثلا اومدن چیز کردن مونده جالبه که در دوری مشروطه و در دوری تقریبا رزاخان بهترین نخبه های ایران رو داشتم ولی در تو حدود این چل پنجه سال اخیر خیلی از لحاظ در واقع هوشی پایین رفتم مثلا خود من تو دانشگردهی که در واقع تردیس می دو سنو از رو دارم که مثلا پدر بزرگشون می پدر بزرگشون جز افراد خیلی در واقع نخبه اولین اولین های دانشگاه تهران بودن، باید. اولین های مثلا دانشگاهی و در واقع مدرسه ای، مملکت نمی‌ساند چقدر مثلا از لحاظ هوشی بسیار پایین، بسیار سطح پایین مثلا ولی افتخارشون اینه که مثلا من از مادر هم به اون خونواده وصل نمی‌دارم، پدر هم در واقع بوقلمون وصل هم. این متاسفانه این مسائل هم وجود دارد کشور شرایط ما تو برخی خانواده‌ها. کرویان میان یهودیا هستن. حالا من چون نامشون با. یادم نیست نشسته اینجا میارم. و ذکر میکنم که اینا به چه روز افتادن با این ازدواج های درو خانواده دقیقاً ازدواج که بسیار در نسلشون اون سطح هوشیشون با... حتی, حتی... نه تنها سطح هوشی بلکه از لحاظ سلامت هم تا حتی... هیچ اصلا بیمارن حالا من چون نمیگم چون رو میخوام درست ببرم در بو امید خدا تو برنامه های آینده ما خواهیم شد بهتون رسونم که فیلسوف مشهور انگلیسی توی قرن هستش در کتاب تاریخ فلسفه غرب ترجمه آقای نجف دریابندری صفحه 136 میاره که انسان محصول عللی است که هیچگونه انایتی به مقصد و مقصودی که به آن رسیدن ندارد منشه او، سیر او، بین و امیدهای او، اشک و عقاید او چیزی جز نتیجه همنشینی تصادفی اتم ها نیست ماده قدرتمند خوب و بد نمیشناسد. از تخریب نمی ترسد و بی پرواه پیش می رود. بر انسان است که دندان بر جگر بگذارد و از محکومیت خیش خم بر ابرو نیابید بینید چقدر روی فیلسوف ها این نظریه در واقع داروین تاثیر گذاشت. شما منتظر من نباشید من... بله. بله شما نفرمودید الان 14 دقیقه میگن که تموم شد شما, شما قرار شد که این بحث نقد که دو بخش تموم شد منم یک نظریایی از غرب که درباره همین زیست و تکامل زیستی گفتند روندش رو خیلی کوتاه عرض شما هر وقت این در حتی بخش بعدی هم که به پایان رسید بفهمم تا من باش. باش. و میبینیم که این جب جبرنگاری منفی که انسان رو تحت اسارت طبیعت و در بند ماده بیرم. شما چون می‌بینید که ماده به اون شکلی که می‌دید بی رحم دیگه شما یا مثلا یا چیزی که تو دینامیت مثلا شما می‌ذارید یا مثلا تو TNT تری نیترو تلان چیز ماده دیگه ولی بیرحمه شما وقتی میذاره جلوی بچه کنه منفجر بشه بچه‌م از که نداره و این نوع نگاه داروینیستی تا این نوع نگاه رو به انسان داره میدیم یکی انسان حاصل همین بیرحمی همین طبیعت و لذا اون حالت‌های عاطفی انسان رو در واقع نادیده میگیره و این نو نگاه بیرحمانه هم یک از پیامدهای در واقع نظریه تکمیل یا همون تکامل داروین بوده بله میفرمایید که وقت ما تمام شده ما سومین اثر منفی داروینیسم تو برنامه نهم خدمت دوستان عرض خواهیم کرد برنامه دهم ده چون این برنامه ما اسقای می کنه بله بله, بله. گرامی خیلی متشکریم از حوصله شما و حضور شما و همراهی شما شما رو تا آغاز قسمت دهم ده برنامه رخداد داد به خداوند متعال. خدای یار و نگهدار. سپاسگزارم.